شما برای چه کاری به ایران آمده اید؟ من برای فهمیدن شعر اقبال لاهوری می خواهم زبان فارسی یاد بگیرم من اهل افغانستان هستم در دانشگاه تهران در رشته پزشکی تحصیل می کنم و دوست تاهر علی هستم حتما شما پاکستان را می شناسید کشور من بیش از صد میلیون نفر جمعیت دارد و بیشتر مردم آن مسلمان هستند اما افغانستان در سالهای اخیر درگیر جنگ و اشغال بوده است کشور افغانستان چقدر جمعیت دارد؟ بر اساس آمار سازمان ملل در سال 2006 جمعیت این کشور حدود 29 میلیون نفر است مردم افغانستان مسلمانند و به زبانهای فارسی پشتو و چند زبان دیگر صحبت می کنند آیا زبان رسمی کشور شما فارسی است؟ بله، فارسی دری و پشتو زبانهای رسمی افغانستان است حتما کشورهای پاکستان و افغانستان پیشینه فرهنگی مشترکی با ایران دارند البته، روابط اقتصادی و سیاسی این سه کشور با هم بسیار خوب و روبه رشد است همینطور است مثلا ایران صادرات زیادی به افغانستان دارد و بسیاری از محصولات غذایی و کالاهای صنعتی ایرانی را می توان در افغانستان یافت